جلسه 23 قواعد فقه و سیاسه هفته 12 هم هفته 10 هزار و چار ست محسسه آموزشالی امام بزن علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا عبل القاسم محمد و علی اهل بیت تاهرین المعصومین سی مبقیت الله فی الارضین روحی و ارواه العالمین له الفضا با تحکل بر خدای متعال و توصول به پیانبر گرامی و احلویت اطهار علیه السلام بحث رو آغاز میکنیم انشالله خدا توفیقات همه رو روز افزون بفرماید ما بحثی که داشتیم یک سری مباحث مربوط به قاعده اهم و مهم بود و نکاتی رو پیرامون این مسئله به ترتیب ارز میکردیم در این مباحث آخر بحث توانمندی عقل رو ما مطرح کردیم در این مباحث امکان این که امکان این که ما بحث تقدیم موارد اهم بر مهم رو فل جمله در نظر گرفتیم و از اون طرف مباحث مربوط به وجه تقدیم رو هم عرض کردیم که بحث با نگاه سغروی و کوروی که آیا ضرورت داره اهم بر مهم مقدم بشه منبع کشف اهم و مهم رو بحث کردیم و فل جمله توانمندی عقل رو برای این امر در نظر گرفتیم از شد که یک بحث شناسی نقلی داریم خب ما مهم اهم رو تشخیص بدیم مهم رو تشخیص بدیم منبع شناخت مسادق اهم و مهم چیست آیا عقل یا غیر عقل هم میتونه فل جمله گفتیم که ما یه جاهای مستاق شناسی اهم و مهم رو با رویکرد نقلی میتونیم دنبال کنیم در یه سری مسائل مسادق و صغرهای اهم یا صغرهای مهم رو ما بر اساس نقل خلاصه به دست میاریم و بر اساس دلالت نصوص این رو خلاصه فرض بگیریم که میتوانیم به دست بیاریم ولی این میشه راه نقلی چه مصداقی اهم است چه مصداقی مهم است خب اینها چگونه انجام میگیره بعضی موارد رو از لسان علمای بزرگ نقل کردیم که خلاصه میتوانه از طریق نصوص انجام بگیره و فلجمعه این مقوله رو شناختیم دکتری رو از لسان مرحوم شیخ محمد رزا اصفهانی صاحب وقایت العزهان نقل میکنم صفحه 323 که پس ما الان بحثم مصداقشناسی نقلی اهم و مهمه که ما می توانیم با تمسک به نصوص این رو خلاصه به دست بیاریم که یک موردی اهم است و یک موردی مهم بهشان میفرمایند که و بالعلا حاذا فهو خارج عن هم مساله نا حاذی عل... خب نقطه رو عرض میکنم میفرمایه حال در مورد مورد خاصی میگن خارج از مسئله ماست که ربطی به خلاصه تقدیم یکی بر دیگری نداره بلکه میفرمایند که عقل مثلا بین دو غرضی که در دو مورد متزاحم وجود داره منات هست و از اون طرف می‌خواهونیم بریم از نصوص دینی به دست بیاریم که اگر مثلا ما بحثه به مهم بکنیم این ممکن مستلزم اسیان اهم باشه تو موردی که مثلا می‌فرمایند میگن که از دلیل خاص مثلا در مناسک حج ما به دست آوردیم استشهاد میکنند به ادله اون مورد که یک مصلحت ملزمه وجود داره و اون مصلحت ملزمه در نسبه اگر مقایسه کنیم، موازنه کنیم، میبینیم در یه موردش بیشتره. میفرماید حالا عبارات زائد رو کم نمیخوانم و حکم بعد به عدم امکان البعث الا المهم از تنظیم اسیان الاهم یکی اگر ما به مهم امرو متوجه ببینیم و بگیم که این مستلزم اصیانم اهمم بل هو منباب مناسک الحج علتی استش هدب بها حیث و دلیل وجود و مسلحت ملزمت فر تقدیم زیادتاً علم مسلحت موجوده فی اصل الواجبه ما از دلیل به دست بیاریم که مثلا این مصلحت ملزمه در یکیش خلاصه زیادتر از اون مقدار مسلحتی که در دو واجب مربوط به مناسک حج وجود داره یا یکیش مربوط به حجه یا غیر حجه یا مثلا هر دو مربوط به حجه کار با اون نداریم ما از دلیل فهمیدیم که یه مصلحت ملزمه اقوای هست و اجزا اجزاوفی ها الا لفوته غرض تقدیم خب اون مجزی است چرا؟ چون که تقدیم اینجا فوت میشه اگر مجزی نباشه و عدم تدارک های علامه سبقه بیانه اوفی بحث الاجزا خب اون ریز مورد رو کار نده فقط استشحات میخواستی میکنیم که آقا علما به این توجه دارند که از یه نصوصی ممکن ما اهم بودن رو بفهمیم خب اینجا یه نکته کلیدی من عرض کنم ما چیزی اهم و مهم رو میفهمیم در واقع تو این موارد راه تشخیص اهم و مهم از نصوص چیه یکیش مطابق این روش که همیشه میگیم تصریح به اهم بودن یه جایی ممکنه تصریح بکنن این اهم است یه جایی ممکنه تصریح نباشه ظهور در اهم بودن تو فارسی البته وقتی میگیم اهمیت به معنای مهم بودن در نظر میگیم میگیم فلان چیز اهمیت داره تو عربی الان بگیم اهمیت یعنی اهم بودن حالا ما بعد که قاطی با اون اهمیت به معنای مهم بودن نباشه در تعبیر فارسی میگیم در اهم بودن یه چیزی ظهور داشته باشه که در مقایسه و موازنه دو دلیل ببینیم این ظهورش در اهم بودنه روش سوم چیه؟ اینکه که تمسک به ملازمات اهم بودن یه ملازماتی داره و ما از اون میفهمیم یه لحظه بسید سامنه بری کنیم نه نه خدمت شما هست کنیم تمسک به ملازمات اهم بودن یعنی اگر یک چیزی رو ما لیست بکنیم این دل... دلیل میشه برای این که مورد اهمه این ملازمه داره با اهم بودن خب یه جاهایی هم مثلا حالا ما میخواییم به موارد دیگه ترتیز بکنیم استدلال کنیم تمسک به استدلال های غیر بیان برای اثبات اهمیت اهم بودن اون بحث تمسک به ملازمات هم در واقع خلاصه یک نوعی استدلال، اگر به ملازمات عرفی اهم بودن تمسک کنیم اینم یک جوری در واقع چون که استدلال سریحه استدلال خلاصه عرفیه یه مقداری شفافه سریحه استدلال یه جوری شفافیت و سراحت داره روشنه اون بعدی ممکنه روشن و بیان نباشه ولی استدلال کنیم در مقابل راه های در واقع نفی اهمیت اهم بودن اون چیه یکی از مسائل مهم این ورش اینه که تمسو که به اطلاق البته اینم میتونیم جزء اون ظهورات اون حالا میخوام استفاده اینطوری بکنم تمسوک در اهم بودن از این چهار موردی که گفتیم تصریب اهم بودن ظهور در اهم بودن ملازمات عرفی اهم بودن تمسوک به استدلال های غیر بر... یعنی برای اثبات اهم بودن یا استدلال های بگیم دو مرحله ای دو یا چند مرحله این خودش میشه راه اثبات اهمیت خب تو این موارد گانه این مورد دوم که ظهور در اهم بودن باشه در مقابل نفی هم میتوانیم بکنیم بگیم ظهور در نفی اهمیت تمسط به خلاصت سراحت بکنیم از اون برم هست یعنی همین راه ها به خلاصه عدم اهمیت هم میتوانه تصریح بشه از اون طرف ظهور در عدم اهم بودن خب این هم این همین ماجره رو در اون طرف هم داریم تمسط به ملازمات در واقع عرفی بیانگر عدم اهم بودن عدم اهمیت خب از اون برم هست یا شما ممکنه استدلال بکنید تمسود به استدلال های بگیم غیر بین و چند مرحله ای حالا دو مرحله ای باشه، سه مرحله ای باشه برای اثبات عدم اهم بودن عدم اهمیت. خب اون برشم هست خب حالا برگردیم اون راه های اهمیت که ما گفتیم مقابلشم راه های ادم اهمیت رو گفتیم یه مورد مهم یه مورد خیلی برجسته اینه که ما به پس نیکی تصریح بود خب تصریح دیگه کارش نمیشه بکنیم ظهور چی؟ اگر ظهور غالبی نداشته باشیم هر دلیلی اطلاق داره و اطلاقش در واقع بیانگر هم بودن خودشه یعنی چی؟ اطلاق هر مورد، اطلاق نصوص، بیانگر اهمیت به چه معنا آقا قید نخورده که به من گفته مثلا برو به شهر نگفته که پس این ظهور در اینه که این نسبت به چیزهای دیگه مهمه اگر نسبت به یه مسئله دیگه مثلا قرار بود استثناء بخوره بگیم که تو این مورد اون یکی اهمه دیگه قید میزد دیگه در واقع عدم تقیید عدم تقیید نشانیه چیه خب انواع تقیید داریم یکی از تقییدات میتوانه بیانگر چی باشه؟ بیانگر ادم خلاص اهم بودن یک مورد نسبت به مورد دیگر باشه بگه مگر شما برو گوشت بخر مگر اینکه مثلا فلان آقا رو ببینی مگر اینکه مثلا شما نیاز باشه بریم نان بخری یعنی چی؟ یعنی وقتی اگه خودش استثنا میزنه استثنا مربوط به چیه؟ استثنا مربوط به موارد در واقع به موارد مهمتره کجا شما استثنا میزدید؟ میگه آقا برو نون بخر برو گوش بخر یکی نمیگم همه یه تقییدات ناظر بینه استثناء یک, یک مورد میتواند بیانگر چی باشه؟ بیانگر اهمیت اهم بودن اون مورد نسبت به اون امر مطلق تو نهیم همینطوره امر یا نهیم مطلقه این لزوما نمیگیم همیشه هر قیدی اینجوری ها ولی توان یه جایی ممکنه خلاصه مانع باشه برخی از موارد استثناء میخورن استثنای برخی از موارد علل علل و ریشه های دیگه هم داشته باشه بگی که آقا اونجا مانه اگر شما اونو ببینید مفسده داره اون یه بحث دیگه است که البته نسبت به مفسده هم میشه بگیم مانه خب پس شما این یه مسئله خیلی کلیدیه که راه های تشخیص اهم و مهم در نسول اونجایی که تصریح نباشه چگونه است؟ اونجایی که تصریح باشه چگونه است؟ خب اونا رو معلوم میشه تسریع به اهم بودن یا مهم اهم نبودن اصلا شبیه همین تسریع به مهم بودن و مهم نبودن حتی خود اون رو هم می توانیم کشف کنیم خب تو این مورد این مسئله خیلی مهمه ظهور در اهمیت داره چه میگه آقا برو مسجد بساز خب مگر اینکه فلان اون مگر خیلی جا میتوانه بیانگر اه مهم اهم نبودن این مورد باشه مگر اینکه یه چیزی دیگه باشه مثلا یه وچه دیگه داشته باشه خب پس این یه نکته کلیدیه ما از دل نصوص می توانیم استفاده اهمیت بکنیم خب حالا ما دو تا دلیل داریم تضاهم مربوط به کجاست تضاهم مربوط به است که به حکم شرعی متنافی متزاهم داریم بر ما بعد چگونه بفهمیم کدام اهمه اگه نفهمیدیم که یا به فهمیدیم که اینا مساوی که به تاخیر میرسیم طبیعتا اگرم نفهمیدیم بعد حکم به, به تاخیر بکنیم دیگه شبیه فهمیدنه در وصف عدم استنباط مگر اینکه اصل عملی دیگه داشته باشیم عدم استنباط اهم و مهم و تمایز اونها عدم تمییز اهم و مهم مقتضی چیه مقتضی تغییر است همونطور که تمییز در واقع کش تساوی دو طرف مقتضی تخیر است اینا دو مورد اینا پس موارد تأخیر دو تاست به طور فل جمله یه جایی که میفهمیم این اهم اون مهمه ببخشید این مساوی اون این طرف مساوی اون اونم مساوی این میشه مختص تأخیر این تصاویه یه جایی هم اگه تمیز ندیم چکار کنیم خب نمی فهمید این اهمی و مهم یا باید احت... تخییر داشته باشیم یا در صورت احتمال اهمیت اون یه بحث دیگه است احتمال اهمیت یکی رو ترجیح بدیم احتمال داره ولی قطعی نیست اون یه بحث مستقلیه که باید دید یا احتمال منجزه یا نه این مستلزم خلاصه ای بحث خاص خودشه اما ما الان مسئلهمون اینه که مصداق شناسی نقلی اهم و مهم یه مقوله جدیه چقدر می توانیم بشناسیم می توانیم یا نه اگر میتوانیم راهش چیه؟ راه های نفیش توی این مورد خیلی مسئله مهمیه دو تا دلیل دارید اینها خلاصه میبینیم مطلقه این گفته نماز بخوان اونم گفته مثلا این نماز رو بخوان اونم گفته اون نماز رو بخوان شما از کجا میخواد بفهمید که کدام اهمه اگر به هر کدام جدا جدا نگاه کنیم این میگه آقا من, مهم، من اهمیتم بیشتره چرا؟ چون من قید نخوردم این خیلی نکته مهمیه همین که داریم که آقا من رو انجام بده قیدم نزده یعنی چی؟ یعنی من مهمترم من اهمم من رو باید شما ترجیح بدی اگه من مهمتر نبودم خودم میگفتم یه قیدی میزدم ولی نکته مهم اینه که یعنی زهوره اگر یه دلیل دیگه داشتیم اینجا یه تذکار داریم یه تبصره داریم تبصره چیه؟ اینه که در صورت دستیابی به دلیل یا شواهد قابل قبول برای ترجیح یک مورد دیگه یک حکم دیگر میتوان از ظهور خلاص دلیل نخست دست برداشت چون ظهور دیگه ظهورش در اینه که ظهور دلیل دلیل بگیم ظهور ظهور و اطلاق خلاصه اون دلیل اول از اطلاق و ظهور دلیل خلاصه اهم بودن دست برداشت چون ظهوره اگه دلیل اقوا داشتید شاهد قابل قبول داشتید اون و اقوا بود خب یه حالا بگیم دلالت بر اقوایتش در واقع می کرد حالا با اقوا بودنش کار نداره یه بحث دیگه میشه. پس اینجا ما دست بر بیداریم خب این یه بحث کلیدیه چرا؟ چون که دلالت نصوص متفاوتن بعد نحوه دلالت هم خب می توانه متفاوت باشه خب یکی از موارد که ما میتوانیم مثلا از اون ملازمات استفاده کنیم از اون در واقع بگیم امور فرعی ملازمات مثلا اهم بودن چیه اگه یک چیز اهم باشه اهم بودن الف بر ب لوازمی داره یه ملازماتی داره تصریب خودش نشده ظهورم در اون نداره تو روایت مثلا ملازمه اون رو پیدا کردید شما اگه الان بخواد ببینید یک چیز اهمه کجا مثلا یه جایی ترجیح داده موردش پیش آمده لوازم اهم بودن خود ترجیحه تمسک به ترجیح یعنی تصریح نکرده ظهور نداره مستقیم که آقا این اهمه ولی شما دیدید امام معصوم اون رو ترجیح داده از ترجیح اگر مسئله هاشیهی نباشه تمسک به ترجیحات منسوس منظورم با اون قبل متفاوت ها یعنی گفته این رو بقدم کن خب یه جور ملازم هست دیگه اگر این اهم باشه ترجیح پیدا میکنه. حالا این رو ممکنه حتی خودش بگیرید یه موقع ممکنه این رو یه امر جدا نگیرید مثلا یه جای ممکن که ثوابش بیشتره حالا اگر ای نداشته باشه توسط به ثواب بیشتر در کجا؟ در دو موردی که مثلا واجبه خب یه لوازم اهم بودن مثلا بگه که آقا این آثارش اینه اون یکی هم آثارش اینه تمسک به آثار اهم و مهم بعد شما چه کار کنید؟ با زمینه در واقع شما یه مقدمه دوم میارید میگید که آقا اگر این اثر اهم این اثر این اهمیتش بیشتره در واقع تمسک به آثار با تحلیل و بررسی شما میفهمید مثلا ببینید الان در بحث تمسک به ثواب مرحوم سیده بولاسن اسفانی در وسیلت الوصول الا حقایق الوصول جلد یک صفحه 247 یه موردی اشاره فرمودن یه میگوید من ببینم به این که به... انده نزدیکه یا همینه مثل همینه یا آنسان نزدیکه در یه مورد میفرموید چه بسا مسئلت این مورد زیادتر از اونه چرا ایشان توسط میکنم میگه انتا مسئله شرعی دست ما نیست ولی خلاصه از اون بر ما ببینیم یه آجزی از قیام داریم در نماز این نمیتوانه بیسته خب یه آجز از قیام داریم یک قادری داریم اینجا اگه ما مقایسه کنیم میبینیم که یه تمال انتکون المسلحم بل می... از اولش بگم بر رو بما یکون و ازیت من لان ليس المسال و شریعه به يدنا يهتم ان تكون المصلحه التي في صلات العاجز عن القيام جنوبسان اعظم من المصلحه التي في صلات القادر على القيام قياما <تصفح> قادر قیام کنه و قیام میکنه یکی هم عاجز از قیام نشسته میخوانه ممکنه ما احتمال بدیم که چیه این مسلحت این طرف بیشتره مورد دیگه مصلحت در نماز همراه با تقیه اشان میگن آقا مسلحتی که در نماز تقیه هست ممکنه بیش از مسلحتی باشه که در نماز بدون تقیه است شما میایی میگه آقا من میخوام اصلا اینجا اصل نماز چیه گفتن به من چار روکت بخوان گفتن دست باز بخوان خب من اینجا میخوام اصلا به اون مسئله اصلا شجاعت میخوام نشان بدم کی رفته من باید از اینا بترسم نه شما میگنن آقا چرا از این حرفا میزنی چه بسا به شما گفتن تقیه بکن در موارد تقیه شما بدان که بی جهت به شما نگفتن تقیه کن چه بسار مسلحت این نمازه هم رو با تقییه بیش از اون مسلحت در نمازه بی تقییه باشه شما از خودت که جیب مبارک که نباید بیایید خرج کنید حرف بزنی، حکم درست کنید و مسلحت علتی فسلات مدتقیه اعظامت یه یه دو خط قبل داشت یه که این مسلحتی که فسلات مدتقیه اعظام و من المسلحت علتی فسلات بدون تقییه کم وردفی فی ازن به ثواب و سلات خلفه هم تقییتاً یوزاعف به و اشین برابر میشه او انه سلات معهم که سلات خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه روایت دیگه آمده گفت فرموده که نماز با اونها اصلا مثل اینکه با پیانبر پشت سر پیانبر بخوانی چرا از جیب موبار خرج میکنی نه من نمیخواب نماز این من میخواب نماز درست همه بخونم آقا به شما گفتن که این نماز تقییهی البته همه جو جا... لزمان جای تقییه نیست اون یه بحثی دیگه است یه جای اصلا زمینش نیست خوفی نیست خوبش. یه بحث دیگه است یا یه مفسده مثلا از این برفض نداره خب پس این هم یک نکته ای که از این لوازم ما بیایم بشناسیم. هر نکته مهمینه که در لوازم هر حکمی به تناسب خود اون حکم است. اینجور نیست که ما انتظار داشته باشیم لوازم همه احکام یکی باشه. اگر لوازم هر حکم متناسب با خودونه در نتیجه نباید انتظار داشت که لوازم همه احکام یکی باشد اما می توان از لوازم قطعی خلاصه در برخی از موارد حالا ممکنه جای مانه داشته باشه حتی درقل در برخی از موارد خلاصه کشف اهم بودن یک حکم نسبت به حکم دیگر رو کرد خب ممکن ولی ممکنه در همون حکم اول در مقایسه با حکم دوم ممکنه نشه ها هر چند لزومی ندارد که خلاصه یکی از اون موارد در واقع مثلا اون حکم خود اون حکم نسبت به دیگر احکام هم اهم باشه پس به تناسب خب پس دو معقول است یکی اینکه این یک مقوله که نسبیه یکی اینکه میتوان اینجا این در واقع تاثیر استنباطی لوازم در کشف اهم یا مهم بودن دو حکم خلاصه امری نسبی است نسبی چرا چون که متناسب با هر کدام چون میخوام بگم این نسبت به اون اهمه ممکنه تفاوت داشته باشه خب ملازمات تول یا لوازم خلاصه این یه بحث خاصیه متناسب با هر کدام مثلا یه جایی هم به اول اینجا نقل هم میتوانه خلاصه کمک بکنه عقل هم میتوانه کمک بکنه ارتكازات عرفی در فهم نصوص حاکی از در واقع از موارد اهم و مهم تاثیر زیادی داره این ارتکازات تأثیر فراوانی در استنبات و تشخیص اونها دارد پس باید هر جا خلاصه لوازه موجود رو با تحجیب ارتکازات تحلیل کرد تحلیل ارتکازات و در واقع اول شناسایی، شناسایی و تحلیل ارتکازاته مربوط به زمان حضور ببخشید زبان صدور نصوص روایی اهمیت کلیدی داره شما با, با این کار شما میتوانید چه کار کنید می توانید در واقع مسادیق اهم و مهم رو خلاصه به راحتی بهتر حداقل تشخیص بدید این خیلی مهمه خب یه جایی میایید پس این اگر این تمسک ما به ملازمات بکنیم تمسک به ملازمات خودش چیه؟ یک نوع دلیل و استدلاله اما این استدلال با استدلال و بعد یه تفاوتی میکنه یه جایی ممکنه از مقدمات دورتر شما آغاز کنید خب یه بحثیه پس در واقعه یه مسئله کلیدی اینه که باید خلاصه از هر کدوم از احکام رو متناسب با خودش تحلیل کرد شناسایی لوازم هر حکم یا هر گونه هر دست از احکام خلاصه اهمیت خاص خود رو داره شما اگر اون رو به صورت بیرونی و لوازم رو تصویر نکنید نمی توانید در بسیاری از موارد بدون در واقع شناسایی لوازم وجودی یا لوازم عرفی مربوطه به هر حکم نمیتوان خلاصه به کشف تشخیص اهم و مهم خلاصه موفق شد چرا؟ چون که شما از قبل بدانید میخوام بگیم به خودش تصریح نکرده دیگه ظهورش هم با ظهورش اون یه روش دیگه میشه میگید آقای مطلقه هر مطلقی میگه آقا من مهمترم مطلقم دیگه قید نخوردم اون یه راه دیگه است اما تمسک به لوازم یه چیز دیگه است مثلا شما در مستحبات یه مستحب رای دو تا مستحب رایجی که ما باهاش برخورد داریم ببینیم شما تعامل کنید ببینید چگونه میتوانید از نصوص روایی که حالا در ذهن شریف شما نیست در ذهن بنده هم نیست ولی حساس بشید الان بین حال هر هرچند مفهوم تزام رو در مصطبات به کار نمیبرن ما ببینه آم به کار ببریم اون چیه خدمت شما ارز میکنم مثلا شما نگاه میکنید میبینید یک نماز قفیله دارید مستحب در ذهن شریف شما معمولاً از دقل از روزه ها این هست که مثلا حضرت زینب در شام مثلا نماز قفله خواندن یا مثلا مذاکری در نماز قفله شد خب اینجا ظهور این دلیل چیه میگه آقا بین نماز مغربه شا نماز رو به قفله ظهورش در این که آقا من مهمترم از مستبات دیگه ولی اونا رو باید اسمی بردن اونا رو اسم نبردن اسم من بردن خب پس من نماز نافله مهمتر از دیگرانم از اون طرف ما میبینیم دلیل جدا داریم میفرمد مثلا نشانه های مؤمن اینه که چند روکت در روز نماز بخانه نماز های واجبه بخانه بله نماز های شب به نمازهای نافله نماز زور نافلهای های نماز هش رکت نافله نماز زور هش رکت نافله نماز عصر اگر اول وقت بود خب اول کار میخونیم اگر نشد به تأخیر افتاد بعدش مثلا این مقداری به تأخیر دو تا دروکت هم نافله نماز مغرب بین مغرب و اشوه اگر زمانش مثلا یه ساعت یه ساعت نیمی مثلا دوست نگذشته باشه بعدم دو رکعت نشسته در بعد از نماز اشا که من خاطرم هست در روایت که اگه کسی رو به خانه گویا نماز شب مثلا خانه توی مزامین یا اگه اون رو نخوانده باشیم میتونه به اندازه نماز شب مثلا حساب بشه قوم خب سر جای خودش. الان می خوام اینجا که بین نماز مغرب ها این رو نماز گفتن. اینو بخوانیم یا قفیله ناف... رو بخونیم این مطلق بلکه یه جوری به نشان نشانه مؤمن داره میگه یه سب کو سیا بشد با اینگر اهم این مجموعه این ها یه جوری کننم میگم آقا قفیله رو نه اون نشانه مؤمن. ولی اینه گفت. خب از ظهور مجموعیش هم ممکن استفاده کنیم. خب <تصفيق> از خلاصه راه ها این که به هر حال ظهور فردی یا ظهور جمعی این موارد شما تمسک کنید ظهور فردی یه موقع میگه آقایان مستم در واقع ظهور یک فقره از روایات یا ظهور چی ظهور مجموعه عبارات یک روایت یا روایات درسته این. اینجا الان شما چی میفهمید؟ یا مثلا در بین در ماه مبارک یه نماز هزار روکتی داریم دو روکت دو روکت در کل ماه مبارک بین نماز مغرب و عشام شما مستحب به خاطر هم هست که مثلا ده روکت شو بین مداخره و عشام بخونید. مثلا الباقی یه سری هم بعد از نماز بعد اون 10 شب آخر خیلی بیشتر میشه به نظرم 20 روکت مثلا بخونید. خب بعضی ها ممکن میکنن آقا این زورش بیشتر دیگه اون حالا نماز مال کل سال خیلی مهم نیست مثل حالا این ببین نماز مال ماه مبارکه که سنی ها چ اون عنوان نماز ظاهرا همون نماز باشه مثلا بنو نماز تراویح میخونن یا حتی هم مشابه اونه جماعت میخونن آقا ببین این نماز یا در ماه های دیگه مثلا ایام زی حج آقا دو مثلا نماز زی بین مغرب و شب بخونیم این مهمتر یا نماز قفله یا نماز نافله یومیه که دو تا من باشم برداشتنم اینه که مثلا این نماز نافل یومی اهمیتش بیشتره اگر وقت رو بردیم اونو میخوانیم خب حالا نماز شب مثلا شما چار دقیقه بیشتر وقت ندارید از اول شروع بکنید دروکت دروکت ها رو بخوانید یا اون دروکت آخر یا یروکت آخر من از حالا اون مقداری که در ذهن شریف خودم باید بگم هست حالا یک تعریفی از خودم میکنم تو ذهنم هست که اون یروکت مهمتره خب اگر فرض کنیم وقت کم باشه باید بگیم یه روکت بخانیم اگه بیشتر وقت ببردیم اون کرد ولی اون که ترتیب معمولیش اون چهارتا اول گوی از مثلا خان نمیشه یا نه خب در هم ما باید ببینیم کدام مهمه پس الان در ظهور این مهمتره پس الان این کلیت بحث ما در بحث اهم و مهم ما یه بحث تشخیص اهم و مهم داریم از قوایات اصلا شما یه نظام به ما بده چه چیزهای مهمه خب یه روش شناسی میخوا در, در واقع ما بایی روش شناسیه. کشف اهم قبلش اصلا تشخی... راه تشخیص مهم راه اصلا یه چیز مهم یه غیر مهم تش... در واقع تشخیص و تمییز مهم از غیر مهم در نصوص طبیعتا این چند راهی که گفتیم بازم وجود داره اول تسریح دوم ظهورات سوم توسط به ملازمات ملازمات یا استطلال ذره ارفی روشن دیگه اسمش هم ممکن شما استطلال نذارید خیلی پیچیده نباشه. ولی اون که در جزیاتش پیچیدگی داشته باشه اما راه چارون توسط به استطلال ها مثلا میگم مثلا استطلال اسمش نظام استطلاع غیر باین برای بگیم استطلاع این چهار تا راه معمولا تو همه موارد ما داریم استفاده میکنیم این قسمت توسط به ظهور اینجا یه مقدار حساسیت بیشتر داشت شاید بله بله بحثم کسی این خیلی برجسته نکنه بعضی بزرگان ممکنه برجسته کنن همین که ایک چیزی ظهور مطلقه این یکی از ظهوراته حالا ظهورات دیگه هم ممکن استفاده کنیم ملازمات همینطور پس ما بدن ملازمات ملازمات غیر مهم بودن رو تشخیص بدیم ملازمات لوازم مهم بودن پس این چار راه تو همه اینها هست تمسک به تسری تمسک به ظهور تمسک به ملازمات ارفید و تمسک به استطلال پس تو اون مبارد همه این چارتا وجود داره پس در واقع مهم بودن حالا به تعبیر فارسی اهمیت و به عربی اهمیت یعنی اهم بودن خب این رو در واقع ما باید تو همه جل لحاظ کنیم خب یه مورد حالا ببینیم آیا سوال اگر سراغ نصوص دینی ما میریم آیا در این موارد اهم و موارد مهم خب خیلی جزئیات داریم آیا مهمترین ها رو میشه در ورد برازت برجستترین موارد اهم در میان احکام اینا کداماست خب این هم یه سوال بسیار مهم میه خب در از این روش های مختلف ما باید در نظر بگیرم الان بحث من بحث اصلیم روش شناسی نیست اما ما برای پیگیری بحث اهم و مهم فقرات مختلفی رو باید در نظر داشته باشیم حتما تو این قسمت نکته روش شناسی که تقریباً الگوی چهارگانه که ما گفتیم اصلش هم بعد همه جله لحاظ کنیم موارد دیگه هم غیر از این چهار تا هم به تناسب ممکنه این موقع شما مطرح کنیم یا در بحث‌های دیگه ما بگیم هم تشخیص و تمییز مهم از غیر مهم هم تشخیص اهم خلاصه و مهم هم تشخیص می خواهی اصلا مقابل یه استطلالی بگی آقای اصلا مهم نیست اهم نیست اون ورش هم باید ممکنه تصریب عدم اهمیت هم داشته باشیم. خب اینا های حالا در این موارد پس تکه حسیلی یکی بحث عدللست خب یکی هم لابله ها گفتیم بحث تحلیل خلاصه ارتکازات در واقع ما در مستقشناسی اهم و مهم از در واقع نکات مختلفی استفاده می کنیم از محتوای نصوص استفاده می کنیم به عنوان در واقع راه های آم راه های عام چیه؟ آم چیه؟ عام و دخیل در مستقشناسی اهم و مهم یکی تحلیل محتوا بود درسته تحلیل محتوای اینها که بگیم آقا اینها تحلیل و تمن... تحلیل محتوای نصوص و استناد به اونها که یه الگوش چی بود الگوی تصریحات و الگوی ظهورات و ملازمات مربوط به خود الفاظ ملازمات در واقع بگیم لفظی خب اینا میشه چی اینها میشه مواردی که ما در واقع خلاصه به تحلیل محتوا می‌پردازیم تمسک به تصریحات تمسک به ظهورات اینا میشه تحلیل محتوا خب از اونور ما زورات مفردات داریم ظهورات جمعی رو داریم مفردات و خلاصه مجموعه فقرات درسته در یک روایت یا مجموعه نصوص ممکنه اینم بگیم مجموعه نصوص چی میگه این شد توسط به محتوى ملازمات عرفی که میگفتیم و نکته سفم چیه توسط به ملازمات لفظی عرفیه این ملازمات لفظی بود اون بعدی میشه یه مقوله دیگه پس یکی تحلیل محتوى است این بحث مستقل بود یکی دیگه استدلال در کنار این یعنی خود این روش فقراتی داره یه فقرش چیه؟ تمسک به استدلاله در واقع خود این تمسک به استدلال یه مقوله بسیار مهمه که عملا استدلال مراحل مختلفی داره خب تو این وسط یه کار دیگه هم ما عرض کردیم اون چیه تمسوک به ارتکازات و به تعبیر دیگه یا چی بگیم تمسک به تناسب حکم و موضوعه من تا این تناسب حکم و موضوع هست کجا می فهمیم بر اساس اون محتوا حواس اون به محتوى هم هست ولی اون محتوا باید با یه موضوعی خارج تناسب داشته باشه بیایم منو این فراتر از نصه. میشه این رو در واقع یه جور تکمله در ادامه اون مورد قبلی بگیریم هنوز استدلال نیست مکمل استدلاله در هاشیه در کنار استدلاله خب حالا مرهوم ناینی اینجا یه فقره زیبا دارن چند تون مصداق برجستان معرفی فرمودن در فواید و جلد یک صفحه 300 و, سی و سی. اگر اجازه فرمایی یک دو سه استراحت بکنیم بعد این رو ادامه رب الح